مطلب دوم در مورد اون حقیقتی است که یکی از جلبه های زیبای اون رو در این مجموعه کاری مجموعه مبنا می شود دید. حقیقت کارآمدی کارآمدی ناشی از دانش و هوش و پشتکار و ابتکار و عزم عزم راسخ که خوشبختانه در این مجموعه ما این رو مشاهده می‌کنیم این نگاه ما به کل حرکت کشور عزم ملی و مدیریت جهادی در سال سه به عنوان شعار مطرح می شود. اما این چیزی نیست که مربوط به سال سه باشه این هویت ماست این حیثیت ماست این آینده ماست این ترسیم کننده سرنوشت ماست اگر عزم ملی بود اگر مدیریت جهادی بود اقتصاد هم پیشرفت می کند فرهنگ هم پیشرفت می کند و ملتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد این ملت در اوج قرار می گیره تحقیر نمی این ملت